سوریه مجادلی. تعلق می‌الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قد سميع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع دعاكما ان الله سميع بصير بنعم الله که بخشاگانده و پر رحمت است خداوند سخنان زنی را که در مورد همسرش به تو مراجعه کرده بود و به خداوند چکایت میکرد چنید خداوند گفتگوی شما را شنیده است زیرا خدا شنوا و بیناست کسانی از شما که همسرانشان را زهار میکنند بدانند که زنانشان مادرانشان نیستند مادرانشان کسانی هستند که آنها را زاییدهند بیشک آنها سخن دروغ و زشتی میگویند حالان که خدا عفو کننده و آمرزنده است کسانی که زنانشان را زهار می کنند سپس نسبت به آنچه چه گفته پشیمان شده و برمیگردند قبل از آمیزش جنسی باید بنده ای آزاد کنند این چیزی است که شما با آن موعظه میشوید بدانید که خداوند نسبت به عمل آگاه است اگر کسی ای نیافت قبل از آمیزش جنسی باید دو ماه پی در پی روزه بگیرد و اگر نمی تواند روزه بگیرد شست مسکین را اطعام کند این به خاطر آن است که به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید بدانید که اینها همه حدود الهی است و برای کسانی که حقایق را انکار کنند، عذابی دردناک است. کسانی که با خدا و پیامبرش مخالفت و دشمنی می‌کنند، چنان خار و ذلیل می‌شوند که پیشینیانشان خار و ذلیل شدند. به راستی ما آیات روشنی نازل کردیم. بدانید برای منکران حقیقت عذابی خار کننده است. روزی که خداوند همشان را زنده برانگیزد، از از عملکردشان با خبرشان میکند. در حالی که همه چیزشان را محاسبه کرده است. هرچند که خود آنها فراموش کرده باشند. زیرا خداوند بر هر چیزی شاهد است. و یا نمیدانی که خداوند از آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است آگاه است، برانید که هیچ نجوای سه نفری نیست مگر آن که چهارمین آنها خدا باشد و هیچ نجوای پنج نفری نیست مگر آن که ششمین آنها خدا باشد و پایینتر از این تعداد و بالاتر از آن هم که باشد خدا همراه آنهاست هر جا که باشند سرانجام در روز قیامت از عمل کردشان با خبرشان می کند. زیرا خداوند نسبت به هر چیزی داناست آیا کسانی را که از نجوا کردن نه شدند نمی بینی؟ آنها به که از آن نه شدهاند باز میگردند و برای ارتکاب گناه و تجاوز و نافرمانی از پیامبر با هم نجوا می کنند. و انگامی که نزد تو میآیند چنان سلام می کنند که خداوند آنگونه به تو سلام نکرده است حالانکه که با خود میگویند پس چرا خدا ما را به خاطر آنچه که میگوییم عذاب نمی کند جهنم برای آنها بس است در آن داخل می شوند و چه بد سرنوشتی است این جهان ای اهل ایمان اگر با یک دیگر نجوا میکنید به خاطر ارتکاب گناه و تجاوز و نافرمانی بر نجوا نکنید بلکه باید نجوایتان برای توسعه نیکی و پرهیزکاری باشد حرمت خداوند را نگاه دارید. خدایی که به سوگ او محشور خواهید شد نجوا کار شیطان است تا اهل ایمان را محزون کند پرچند هیچ زیانی به آنها نمی مگر به اذن الهی پس همواره باید اهل ایمان بر خداوند توکل نماگند ای اهل ایمان هرگاه به شما در مجالس گفته می شود برای دیگران جای باز کنید جا باز کنید تا خدا نیز گله های کاری شما را باز کند و چون گفته شود همگی برخیزید برخیزید خداوند مؤمنان شما و اهل دانش را به درجاتی ترفیع می دهد. بدانید که خدا نسبت به عمل با باخبر است. يا أيها الذين آمنوا إذا نجتم الرسول فقدموا بين يدين جواكم صدق ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أي أهل إيمان هرگاه خواستید با پیامبر نجوا کنید پیش از نجوایتان صدقه دهید که این کار برای شما بهتر و پاگیزه است و اگر برای صدقه دادن چیزی نیافتید آمرزش الهی طلب کنید زیرا خداوند آمرزنده و باگذشت است آیا ترسیدید دچار فقر شوید که پیش از نجوایتان صدقات را پرداخت نکردید حال که صدقه ندادید و خداوند نیز توبتان را پذیرفته است نماز به پای دارید و زکات پرداخت کنید و از خدا و پیامبرش اطاعت نمایید که خداوند نسبت به عمل کردتان با خبر است آیا ندیدی کسانی را که با قومی که مورد غضب الهی بودند بوستی کردند؟ در حالی که نه از آنهایند و نه از شما هستند آنها به دروغ قسم میخورند. خورند حالان که خود به دروغ بودنش واقفند خداوند برای آنها عذاب سختی مهیان نموده است زیرا آنها عمل بدی دارند قسم را سپر کردند و مردم را از راه نجات بخش الهی باز میدارند. پس برای آنان عذابی خار کننده است اموال و اولادشان در برابر مجازات الهی هیچ به کارشان نیاید زیرا آنها اهل آتشند و در آن جاودانه خواهند بود روزی که خداوند همشان را زنده برانگیزد. همچنان که برای شما در دنیا قسم میخوردند، برای خدا هم قسم میخورند و میپندارند مفید خواهد بود. آگاه باشید که همشان دروغگو هستند. شیطان آنها سلطه دارد و یاد خدا را از خاطرشان برده است. آنها حزب شیطانند. آگاه باشید که حزب شیطان همشان زیانکارند. کسانی که با خدا و پیامبرش مخالفت و دشمنی میبرزند، همشان در زمره زلیل ترین افرادند. خداوند مقرر کرده که من و پیامبرانم قطعا پیروزیم، زیرا خدا مقتدر و پیروزمند است. قومی را نمییابی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد و از آن طرف، با دشمنان خدا و پیامبرش دوستی کنند اگرچه چه پدران و فرزندان و برادران و افراد قبیلهشان باشند زیرا خداوند قلبهای اهل ایمان را با ایمان رقم داده است و آنها را با روحی از جانب خود تایید کرده است و آنها را به بهشت هایی که نهرها در آن جاری است داخل می‌کند تا جاودانه در آن بمانند زیرا خدا از آنها راضی است آنها نیز از خدا رازید، بیشک آنها حزب خداید، آگاه باشید که حزب خدا همشان رستگارد استگارد. اولائی که کتب فی قلوبهم الیمان و بروح من وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله أَلَا إن حزب الله ام المفلحون صدق الله خداوند بلند مرتبه بود از این از